داستان دوم خیابون درختی سرمو بردم زیر رخت خوابا این زیر خونکه بوی نفتالین میاد لحافی که صورتم روشه خیس آب شده فکر کنم یه هست که سرمو کردم این زیر چقدر ما رخت خواب داریم همینجا هم تو اتاقای دیگه فکر کنم مامونم میخواسته لافتوز بشه ولی به آرزوش نرسیده از این فکرم خندم میگیره دارم فکر میکنم اگه مامانم میخونه مردم لافتوزی میکرد خیلی خنده دار بود اسم اون چیزی که لافتوزا با خودشون دارن و پنبه و پشم لااف و باهاش میزنن چیه؟ ام... نمیدونم فکر کنم دیگه بدبخت شدم نمیدونم دیگه چکار کنم دیگه چطوری زندگی کنم؟ چند تا هستای این زیر پیدا کردم. اینا رو من دیختم این زیر رتمند. خاک تو سرم. همیشه میام اینجا تو تاریکی تمرهندی میخورم. میام میرم بالای رخت خوابا دراز میکشم. هندی میخورم. خیلی حال میده. هستهاشو نگه میدارم. میشورمشون بعد میریزمشون تو یکی از کشورهای کمادابیه. اینجا قوطی کبریت خالیم نگه می‌دارم مامانم میگه آشغال جمع کنی باهاشون خونه درست میکنم. یه گوشه اینجا با قوطی کبریتا خونه درست کردم خود مامانم یه عالم صرفمرف نگاه می‌داره صرفامونو بشقوبامونو که میشکنه نگاه می‌داره نمیریزه دور همه رو جمع میکنه اینجا تو انباری رختخوابامم نگاه می‌داره یه عالمه لافتوشه که کهنه داریم هیچ کدومو نمیندازه برن وقتی دویدم اومدم بالا از دست مامانم پام خورد به یکی از قوطی کبریتا یه طرف خونه که درست کردم خراب شد دارم این زیر به همه اینا فکر میکنم سنم و میارم بیرون دارم خفه میشم از گرما پا میشم پنجاره امباری رو باز میکنم یه ردیف گرد با نور میاد چو مثل یه خیابون خیابون گرد اینجا تهران است خیابان گرد ها پنجرمون رو یکم میبندم خیابون گرد باریک میشه خیلی باحاله. تو انباریمون شیر آب گذاشتیم، گذاشت به خاطر داداشم چهار سال پیش وقتی مامان ازم از من فهمید پیمانم زن گرفته اونم یه زن ژاپنی اول میخواست خودشو آتیش بزنه. یه هفته تموم همش گریه میکرد. گریه هاش واسه زنگ گرفتن پیمان با گریه هایی که واسه مامانش کرد با هم قاطی شده بود. آخه مام بزرگم یه سال قبل از اینکه خبر زنگرفتن گرفتن داداش ها بشنویم مرد. من از نفرنایی که میکرد میفهمیدم که گریهش واسه زن داداش پیمانمه وقتی واسه مام بزرگم گریه میکنه شده ترکی میخونه تازه مدل گریهشم فرق داره آدم گریهش میگیره هنوزم وقتی از کارای من هرس میخوره یا چیز میزا گرون میشن یا ظرفی از دستش میافته میشکنه زنی داداش پیمانم و به اضافه من نفری میکنه قبلا فقط منو نفریم میکرد وقتی مامانم نفریم میکرد مید دویدم میومدم بالا فکر کرده منو بلایی سرم میاد الانم همین جوریم هم. ولی مامانم هنوز واسه مامان بزرگم گریه میکنه من خیلی مامبزرگم بزرگم رو دوست نداشتم بچه که بودم اصلا ازم خوشش نمیومد مهربون نبود با آدم ولی با مامان بزرگم دوست دارم بیچاره مامان همیشه مریض بود اصلا فامیلای مامانم همهشون مریضن انگار وقتی مامان بزرگم مرد خیلی ناراحت نشدم فقط ناراحت بودم که مامانم خیلی ناراحت بود خیلی گریه میکرد خورداد ماه بود اون موقعم که مامان بزرگم مرد. من کلاس پنجم بودم، موقعی امتحاناتم بود. روزی که مرد من امتحان داشتم. رفته بودم مدرسه. دوستم سارا نیازی اومده بود طرفم. هنوز امتحانمون شروع نشده بود. دویده بود طرفم محکم خورده بود بهم. به خندیده بود. من محلش نذاشته بودم و رو ناراحت کرده بودم. مثلا خیلی ناراحتم. بعد سارا نیازی گفته بود: پری، یه آهنگ جدید از داداشم میخونم برات. الان یادم نیست چی خونده بود بعد من صدامو یه جوری کرده بودم که مثلا داره گریم میگیره و گفته بودم نیازی من مام بزرگم مرده وقت تو آهنگ میخونی بعدم نشسته بودم گوشه حیات سرم گذاشته بودم روزانوهام علکی گریه کرده بودم اون بیچارم اومده بود دستشو انداخته بود داره گردنم اونم علکی گریه کرده بود حرسم در میاد از کارم تو خطب مام بزرگم من گریم واسه این بود که یکی از مانتوی که مال سمانه دختر آبجی زندایم بود و پوشیده بودم. مامانم مجبورم کرده بود چون خودم مانتو مشکی واسه خودم نداشتم. سمانه هم مانتوشو نمی‌خواست. هم برام گشاد بود. آخه سمانه خیلی گنده تر از من بود. با اینکه همسن بودیم. تازه مانتوش اپلم نداشت. منم هم همش مجبور بودم خودم شونه هامو ببرم بالا. مامانم چقدر ماچم میکرد کرد؟ فکر میکرد واسه مام بزرگم گریه میکنم چه جووریم راه می رفتم آخر همش معجبور بودم شونه هوم ببرم بالا الان فردالم خوب به این چیزا فکر کنم پیمانم نامه فرستاده بود گفته بود میخواد یه ماه دیگه بازنش ایران از وقتی رفته بود ژاپن تا اون موقعی که من اول راهنمایی بودم نایمده بود پیشمون سال هفت بود که اومد نامم ننوشته بود تا اون موقع شایدم من خبر ندارم من یادم رفته بود که اون داداشمه. اون سال دو سو تجدید آورده بودم. مامانم رفته بود کارناما رو گرفته بود اومده بود خونه کارنامه رو پرس کرده بود تو صورتم گفته بود خاک تو سرت. آخه شیشم چیه که؟ توش تجدید میاری؟ آروم گفته بودم چرا میگی شیشم؟ اول راهنمایی خیلی خول بودم فکر کنم. مامانم داد زده بود آخه ما در مورد چه غلطی میکنه به جای درس خوندن پس؟ تو خونم که کار نمیکنی لا اقل کار خونه یاد بگیری. اوماده بود دو دستی زده بود تو سرم با حرص گفته بود خاک تو سرت آخه چه غلطی میکنی گفته بودم آی آی مامان همیشه تو دستی میزنه تو سرم یا موهامو میگیره میکشه وقتی کارای خونه رو نمیکنم یا وقتی میگه برو از انباری سیب زمینی بیا رو من نمیرم یا چیزای دیگه بهم گفته بود بی‌آری و گنه درس میخوندی که زندگیت هی پوز دختر آبجیشو به تو نده و کلی فوکش دیگه داده بود ولی فقط همین یکیشو یادم مونده نفهمیده بودم معنیشو هنوزم نفهمیدم من خیلی بیارم غلطی نمیکردم. هیچ غلطی نمیکنم. درسام سخت بود خب سر کلاس نمیفهمیدم معلم‌ها چی میگن اصلا همهش چیزای دیگه میومد تو فکرم احلام هم همینجوری هم. هر سال تصمیم می میگیرم از اول سال درسامو بخونم ولی نمیشه همش دلم میخواد به چیزای دیگه فکر کنم مثلا به بعضی از معلمامون من هر سال عاشق یک از معلمامون میشم امسال از معلم ادبیاتمون خیلی خوشم میاد. همش به اون فکر می کردم از اول سال یه بار براش یه نامه نوشتم اما روم نشد بدم بهش. هفته ای دو روز باهاش کلاس داشتیم امسال یه باش سر کلاس شرکی گریه کرده بودم حرککی واسه جلب و جا. مامانم اون سال که تازییه شدم گفته بود نمیذارم دیگه در بخونی ولی گذاشته بود. داداش پیمانم عکسشونم با نامه فرستاده بود. تو عکس سر زنش باز بود. هیچی سرش نکرده بود؟ یه تیشرت سفید آستین کوتاه پوشیده بود و شلوار لی آبی کمرنگ موهاشم کوتاه بود کفشش تو عکس نیفتاده بود یادمه من همش دلم میخواست ببینم کفشش چه شکلیه داداشم زنشو تو عکس بغل کرده بود من کلی خجالت میکشیدم وقتی عکسشون رو نگاه میکردم هر دوتاشون یه عکسشون انداخته بودن داره کمر همو اون دستشون دستشونو بلند کرده بودن طرف آسمون رو میخندیدن داداشم هم مثل خانومش تیشرت سفید پوشته بود که روش به ژاپنی چیزایی نوشته بود سیبیلش هم زده بود اصلا داداشم رو نمیشناختم خیلی فرق کرده بود نامه که رسید دایم و زن دایم هم اومدن هرچی بشه اون میان مامانم وقتی دایم داشت نامه دادش هم میخون محکم زده بود روسینش با باهش گفته بود اله خبر مرگت میومد پیمان بعد گفته بود خدای منو رو دست این بچه ها خ چی گناهی کردم که این بله ها رو, رو سرم نازل میکنی زنداییم دست مامانم گرفته بود گفته بود نکن دایی قزی ننگ خدا با خودت این جور نکن بدشم ملکه ادای گیه کردن و در بود دایم گفته بود استغفرالله بعد تنتون تصبیهش شمارده بود سرشو تنتون تکون داده بود و دستشو و هی کشیده بود به ریشای سیاهش من تو اتاق قبی نشسته بودم از در نگاه میکردم دو نشسته بودم از در به زور نگاه میکردم دایی ما یکم دوست دارم یعنی ام... نمیدونم دوستش دارم یا نه یه جوریه نمیفهمم از آدم خوشش میاد یا بدش میاد مثلا نمیدونم با و دوست داره یا بدش میاد ازش نه بیشتر دوستش داشتم وقتی بچه بودم مهربونتر بود ولی الان همه آدمو نصیحت میکنه بیشتر وقتام که میان خونه ما هر آدم در میاد با هم خیلی شوخی میکنه ولی به همه چیز آدم کار داره همش به مامانم میگه چرا به نمیگی چادر سرش کنه مامانم یه بار بهش گفته بود خودم میدونم بگم یا نه داییم از مامانم کچکتره دو سال بعد از اینکه مامان بزرگم مرد، واسه با بابابزرگم زن گرفتن. بابابزرگم خیلی سرحال شده بود. با زنش رفتن خونه دهشون. رفتن اونجا زندگی میکنن. قبل از اون یعنی تا وقتی با بابابزرگم زن نگرفته بود، داییم بیشتر خونه با بزرگم بود. مامانم هم زیاد میرفت پیشش. ولی از وقتی زنگ گرفت و رفت دهشون، دایم و زنداییم همش میان اینجا. داییم خونه بابابزرگم تو تهران فروخت. سهم مامانم و تازه پارسال به اشتاد فکر کنم. همش هم نداد انگار. من دقیقا نمیدونم مامانم اینا رو به زری خانم میگفت منم گوش میکردم مامانم تا یه سال با دایمی‌نا قهر بود مامانم به سری خانم گفته بود هنوز هنوز زنده است. اون وقت بهرام نمیدونم چجوری جوری خونه‌شو فروخته اینقدر که این اونور آشنا اون داره تو این کمیته بود دفتر خونه و هزار تا جا بیچاره آقامم ساده سری خانم گفته بود وا تو رو قرآن از آقا بهرام بعیده چه چیزایی میشه آدم مامانم گفته بود ای بابا تو اما زری خانم گفته بود حالا سهم شما رو داده مامانم گفته بود ولم کنه زری من چی میگم تو چی میگی زری خانم گفته بود ای e, دیوونه نشی啊 شکایتی چیزی بکنید ازش خوب. خب از داداشم خجلت میکشیدم از عکسش مثل یه مرد غریبه بود میخندید وقت اونجوری نمیخندید یعنی اصلا یادم رفته بود یادم نمیومد داداشم چهجوری بود اسم زن داداشم میچیکو میچیکو من خیلی از اسمش خوشم میاد خیلی بامزه است مثل خودش من دوستشم شبیه اون باشم خیلی خیلیام مهربون بود مامانم میگه چیچیکو اون اونجوری میگه میگه اسم قحتی بود گیر داده بود به داداشم گفته بود باید اسم زن تو عوض کنی داداشم دو دو بیداد را انداخته بود من از داداشم خیلی میترسم. آرومه با آدم کاری نداره ولی اگه حرفی بهش بزنن خیلی عصبانی میشه الان که دارم حساب میکنم فکر کنم 14 سال از من بزرگتره مامانم بعد از یه هفته گریاش تمام شد شروع کرد به تمیز کردن خونه جایی همه چی عوض کرد زندائیم کمکش میکرد اون موقع زنی خانومینا همسایه بغلیمون هنوز نرفته بودن از کچه اونم میومد کمک مامانم زندائیم که بعد از مردن مامان بزرگم هم همهش میومد پیش مامانم من بعدا فهمیدم که مامانم میخواسته طبقه سوم خونهمون آماده کنه که داداشم با خانمش بیان اینجا زندگی کنن. این انباری رو هم میخواستن آشپزخونه کنن. واسه همین لوله آب کشیدن و زرفشوی گذاشتن براش. از پله های اینجا که میریم پایین میرسیم به در پشت بوم. اون طرفشم یه اتاق هست که بهش میگیم بهارخواب خواب. مامانم میخواست اونجا رو بکنه اتاقشون. این بارری هم به انباریمون بالاترین جای سری خانوم اون موقع به مامانم گفته بود عاسمجون جون اقل طبقه اول یا دوم دو آماده کن براشون مامانم گفته بود دیگه چی پس مهمونامو کجا ببرم سری خانومم گفته بود اصلا ببین پسر قبول میکنه اینجا زندگی کنه ببین پیمان قبول میکنه این پسر دیگه اون پسر ده سال پیش نیستا زنش قبول میکنه آخه مامانم گفته بود غلط کردن نکن بعدشم مگه همون ده سال پیش چه جوری بود خدا نکسن ازت بچه بعدم آه کشیده بود و چشماشو با پایین پیرهنش پاک کرده بود من خیلی خوشحال بودم به همه پوز میدادم به دوستام پز میدادم اصلا اخلاقم عوض شده بود خودمو با سه زنی دختر زریخانه زن میگرفتم اونم همش میومد خونمون التماس میکرد عکس داداشم و بهش نشون بدم یواشکی میرفتیم از کمد آهنی مامانم عکسو برمیداشتیم با سریا میرفتیم طبقه سوم تو بهارخواب به عکس داداشم و زندازاشم نگاه میکردیم در گم یه چیزایی به هم می و هر هر میخندیدیم. چرس و پرس می گفتفتیم فکر کردین داریم حرفهای بیتربیتی می مثلا تا یه مرتتم کارم این بود که میرفم از کمد چوبی مامانم که لباسش رو اونجا میزاش. یکی از پیرهنش رو بر میاشتم مهمونیشم میپوشیدم. پوشیدم می تویدم دوم تو پذیرایی جلو آینه واممی داددم عد زندادشم رو در میآوردم عد خدیددن رو. یه دست بالا مثل تو عکس مثل اون لباس بپوشم. ولی شلوار اون رنگی نداشتم، تیشرت اون رنگی هم نداشتم. مامانم با پولی که واسه جهاز من کنار گذاشته بود، یه دست موب خرید واسه خونمون. چی دیمشون تو پذیرایی طبقه دوم. میگفت پسرم خجالت نکشه جلوی زن خارجیش. یه وقت مهربو می می‌شد، یه وقت فوششون می‌داد. الانم همینطوری میکنه با منم. وقتی داداشم و زنش اومدن خونمون، همه فامیل اومدن خونمون. مامانم اصلاً بزند داداشم محل نذاش. زن خیلی مهربون بود همهش میخندید انگار همهش داشت میخندید یعنی آدم نمیفهمید داره میخنده یا قیافش اونجوریه من از داداشم خجالت میکشیدم اونم زیاد با هم حرف نزده بود فقط بغلم کرده بود دور اتاق چرخونده بود گفته بود مامان این پریه مامان این پریه ماشالله بعدم قه قه خندیده بود مثل تو عکس خندیده بود مامانم گریه کرده بود من خجالت میکشیدم. دلم میخواست هم زمین جلوی همه منو چرخونده بود تو هوا سندادش هم به همه تعظیم کرده بود به منم مامانم اصلا باش حرف نمیزد فقط گفته بود بفرما خوش اومدی سندادش هم خیلی فارسی نمیفهمید فقط سلام و حرفای معمولی رو میفهمید ولی زندویم این همش باش حرف میزد همش بهش میخندید سر سفره همش براش غذا میکشید ولی هی میرفت تو آشپزخونه با خواهر و فامیلش پشت سرش حرف میزدن گفته بودن چه فیس و افاده‌ای داره چرا دا این شکلی این چه بینمکه لیاقت پیمان همینه حیف محبوبه که به پای این پیمان نشسته بود الهی بمیرم دختر به اون خوشگلی خوش چش و ابرو اینو انگار چششو با مته سوراخ کردن قد و قوارهش مثل بچه مدرسه یا میمونه یه پویی نمیده اینا خودشونو هم نمی‌شوران فکر کنم. من رفته بودم پشت پرده آشپسخونه. داشتم گوش میدادم به حرفاشون. به نظر من اصلا بو میداد. یعنی بوی خوبی میداد. خود زنده ایم همیشه بو میده. اون وقت میچیکوی بیچاره رو میگفت بو میده. مامانم چند جور غذا درست کرده بود. فامیلامون خودشونو رو خفه کردن. انگار یه هفته غذا نخورده بودن. فکر کنم مامانم خجالت کشیده بود. فامیله زندگیم اینجوری بودن. مامانم چنگ زده بود به صورتش. فکر کنم از خجالت آمد شده بود خونمون از شلوغی من همش موازه بودم کسی چیزی رو مبلا نریزه نمیذاشتم بچه ها رو مبلا بشینن فقط پسر ما رو میذاشتم روشون دراز بکشه اسمش فرشاده خیلی دوستش دارم داییم همین یه پسرو داره یه دخترم داره که پیرسال دنیا اومد اسمش کیمیه اونم دوستش دارم فرشادمو فلجه به دنیا آمد همینطوری عقب مونده ذهنی وقتی میگم عقب ذهنی خجالت میکشم خیلی گناه داره بچه که بودم خیلی دوستش داشتم الانم هم همین جوری هم. همش همهش میخنده خیلی مهربونه الان ده سالشه شیش سال از من کچیکتره مامانم همیشه میگه کی میخوای بزرگ بیشی؟ خرسه گنده راست میگه من همیشه کار بچگونه میکنم مامانم میگه اندازه سند رفتار کن میگم سند نه مامان سند بعد قاه قاه میخندم مامانم میگه خواهد تو سر فقط بلدی غلط منو بگیری دیگه کار دیگه که بلد نیستی آخه خیلی قلط قلط حرف میزنه بعضی وقتا تازه وقتی میخواد بگه مسقرشو در نیار میگه مسخره فروشی رو انداختی من از خنده میترکم بگم فروشی شب وقتی همه رفتن مامانم با زنی خانم تو همون پذیرایی طبقه دوم رخت داداشم و زنشو پهن کردن. خوشکل ترین لحاف و براشون پهن کردیم. زن داداشم هی hey, تنظیم میکرد به مامانم. یادم نمیاد چیزی هم میگفت. من با سرگی رفته بودیم تو اتاق عقبی هی hey, به هم تنظیم میکردیم و هر حرفی رو که میزد عداش رو در و قاه قاه میخندیدیم. من رفته بودم لاافتوشکم آورده بودم انداخته بودم کنار رختخواب زنده مامانم مجبورم کرده بود جمع کنم برم پایین وقتی سریه و مامانش رفتن مامانم داداشم رو برده بود پایین بهش گفته بود که بالا رو مرتب کردیم باید دیگه بیاید اینجا بمونید اینجا رو میگفت بهار بهارخوابو داداشم اولیش بلن بلن خندیده بود گفته بود چی میگی مامان یه حرفی میزنیو بعد ترکی حرف بود یادم نمیاد چی گفته بود دیگه مامانم شروع کرده بود به گریه کردن گفته بود مادر تو ول کردی رفی دنبال معلوم نیست چی ترکی گفته بود بعضی حرفاشو نفهمیده بودم من خوابیده بودم تو جام طبقه اول مامانم و داداشم تو بودن داشتن بلند بلند ترکی حرف میزدند. دعوا کرده بودن بعد داداشم آمده بود بیرون درو محکم کویده بود زن داداشم اومده بود سر پله‌ها داداشم رو صدا کرده بود اون موقع ادلم میخواش برم ببینم داداشم و زن داداشم چطوری با هم حرف میزنن؟ چطوری با هم رفتار میکنن ولی ترسیده بودم میترسیدم داداشم بگیره منو بزنه. نمی چرا؟ فکر می کردم اگه داداشم منو ببینه میگیره منو میزنه. صدای گریه مامانم شنیده بودم رفته بودم از پوش بغلش کرده بودم. دستم و انداخته بودم دور شکمش. شکمشو بغل کرده بودم، همیشه اونطوری بغلش میکنم، خیلی حال میده، شکمش خیلی بزرگه، خیلی کیف میده شونه های مامانم رو میدیدم که تکون میخوره، مامانم گریه میکرد، مامانم همیشه گریه میکنه دلم برش میسوزه، بیچاره مامانم، منم گریهم گرفته بود فردا صبح زود داداشم و خانومش رفتن، بعد از صبحونه رفتن. فکر کنم رفتن خونه یکی از دوستاش نمیدونم که الان میگم شاید رفته بودن خونه دوستش مامانم که به من هیچو نمیگفت الان هم همینطوریه اصلا با من حرف نمیزنید خیلی چیزا رو هم بهم به نمیگه منم هیچچیمو بهش نمیگم هرچی بگم یا داد میزنه سرم یا میزنه تو سرم یا اصلا محل نمیده اگه هم چیزیو براش تعریف کنم میگه خب دیگه چند بار میگی یا میگه کم چرت بگو کم حرف بزن بخوام ازش میگه نه هر بخوام برم میگه نه بعد کلی قبلاا بهتر بود باهام مامانم بازم گریه کرده بود وقتی داداشم اینا رفتن داداشم چندتا لباس و دمپایی روفرشی و یه کیمونو برام آورده بود همهشون برام بزرگ بودن اون موقع مامانم گفته بود پسر بیشعور لباسهایی زنشو برداشته آورده واسه این بچه به داییم گفته بود من لباسایی که آورده برامو خیلی دوست دارم الان تقریبا اندازهمن مامانم گفته نگهشون دار بعدا لازمت میشه نمیدونم بعدن یعنی کی نمیذاره بپوشمشون همش باید لباسایی رو که خودش میدوزه بپوشم شلوارای گلدار بیریخت یا پیرنه شبیه پیرنه خودش واسه مامونم جارو برقی آورده بود جاروبرقیش خیلی خوبه تالا خراب نشده همین زنده این همش میاد میبره می رو باش جارو میکنه میگه جاروی خودشون خوب نمیکشه آشغالا رو الکی میگه اون سال رفیوزه شدم رد شدم مجبور شدم سال بعدم دوباره اول راهنمایی رو بخونم مامانم گفته بود نمیذارم بخونی بعد داییم اومده بود مثلا مامانم راضی کرده بود که بذاره بخونم. مامانم خودش میخواست بذاره اون سال آبرون تو مدرسه رفت همه میدونستن دو سالم. بعضی معلمان بهم می اب نداره پایت قوی میشه ولی پایم قوی نشد. پا میشم صورت تو زرشوییی می کاش یه آینه اینجا بود که خودم توش میدیدم نمیدونم چه شکلی شدم سرم داره میچره از درد؟ فکر کنم ساعته دارم گریه میکنم اینجا. نمیدونم ساعت چنده اون موقعی دویدم بالا فکر کنم ساعت ده بود دلم داره قور قور میکنه دیشبم درست و حسابی شام نخوردم الانم که صبونم نخوردم دارم میمیرم از گشنگی من مثل یه اجده ها غذا میخورم مثل یه خشت گنده مامانم چند بار بردتم آزمایش دادم فکر میکنه انگل دارم که این همه میخورم نداشتم کاشی خوراکی چیزی اینجا داشتم باید از این به بعد چیزایی اینجا قایم کنم تو کمودای اینجا یه ندیف دیف اینجا داریم بعض جهاز مامانمه خیلی قدیمین. میرم در امباری رو باز میکنم تا از بالای پله ها ببینم پایین چه خبره صدای مامانم دیگه نمیاد میشم رو پله های جلوی انباری دستوا میزارم رو زانوام سروا میزارم رو دستام صدای مامانم بلند میشه. میپرم از جا میام جلوی در انباری وامیستم. سرمو میبرم پایین بهشنم چی میگه مامانم موام ریخته رو صورتم معوم میزنم پشت گوشم. الهی بی مادر باش الهی ذلیل بشی که بی آبرومت کردی ای خدا شروع میکنه ترکی نفری نمیکنه مثل وقتی که میچیکو رو نفرین میکنه صدای زندهیی میاد داره میگه دختر دی تو رو خدا بسته دیگه چقدر نفرینش میکنی اینقدر دیگه نمیشنوم چی میگن میام تو انباری درو میبندم میشینم رو زمین چارزانو نشستم تکه دادم به زرفشویی نور از پنجره افتاده رو صورتم سانم پایین موهام باز ریخته دورورم کش سرم سرمو گم کردم فکر کنم مونده زیر رخت خوابا همیشه با جوراب مامو میبندم جوراب مشکی پارسیان دارم به این فکر میکنم که چرا زنده به مامانم میگه دختر دایی یعنی پس زنداییم ایم دخترم می مامانم و دایی میشه تا حالا اینو نمیدونستم میدیدم که زنده همیشه به مامانم میگه دایی قزی تازه فهمیدم اینو با هم دخترم دختر داییه چولم چخما چو خنگم تو سرام از به خوشم نمیاد. فکر کنم اونم از من بدش میاد. 15 سال از من بزرگتره. علکی با آدم مهربونه. پشت سر آدم یه جور دیگه است. مثلا وقتی منو میبینه میگه چقدر لباست خوشگله. از کجا خریدی؟ منم میگم مامانم دخته. بعد به گوشم میرسه که رفته با خواهرش هر هر خندیدن به لباسم. به مامانم میگم اینا رو ولی بازم هیچی چی بهش نمیگه. از مامانم میتشه. ولی مامانم چیزی بهش نمیگه که اون موقع که مامانم با خانم درباره فروختن خونه با بزرگم حرف میزدن من شنیده بودم مامانم گفته بود داداشم از زنش فرمان میگیره زن خانم گفته بود وا تورو قرآن رو میگی حالا خوب ده سال از آقابهرام کچیکتره اون موقع نفهمیده بودم فرمان میگیره یعنی چی مامانم هیچیا به من نمیگفت میگفت هنوز بچهای به تو مربوط نیست الانم نمیگه منم مجبورم یواشکی کنم دیگه درباره هیچی با من حرف نمیزنه سنده این بچهش گذاشته تو آسایشگاه، چند وقت بار میارنش خونه، بیچاره فرشاد. دخترش هم همیشه میذاره پیش مامانش، تا میاد اینجا فزولی ما رو بکنه. من که بچه‌م عقب موندم باشه، هیچ وقت نمیذارمش آسایشگاه. از شوهرم طلاق میگیرم اگه بخواد بچه‌ام بذاره آسایشگاه. نشستم اینجا دارم به این چیزا فکر میکنم نمیخوام به کاری که کردم فکر کنم. وقتی بهش فکر میکنم میخوام دق کنم. دلم می‌خواد بمیرم. نمیدونم دیگه چه جوری زندگی کنم. <تصفيق> کنم همه محل بفهمن چیکار کردم حتما اون آقاهه به سر هم همه جا رو پر میکنه شاید کل فامیلمونم بفهمن دستمو میبرم زیر رختهخوابا کشه سرم اونجا نیست سرم میچسبونم زمین شاید افتاده زیر زرشویی دستم میبرم زیر زرشویی پیداش میکنم موهامو میبندم موهام فره تا کمرم میرسه زنده ایم همیشه میگه چه موهایی داره این پری خوش به حالت منم تو دلم رو در میارم. دروغ میگه حتما حالش از موامم به هم میخوره. چارزانو نشستم وسط انباری، دارم از گرما میپزم. دستمو میزنم زیر چونم. آه, آه، میکشم. دوشنبه بعد از امتحان با فرشته سدی قرار گذاشتیم بریم عکاسی، هم من عکس بگیرم هم اون. بعد عکسامونو بدیم به هم واسه یادگاری. آخه میخواستن برن شهرستان زندگی کنن. فکر کنم میخواستن برن اراک. اونجا خونه دارن فکر کنم. امتحان آخرمون بود امتحان تاریخ بود خوب ندادم. معلم تاریخمون هی سر جلسه میخواست کمکم کنه. من ولی داشتم به این فکر می کردم که به مامان چی بگم واسه رفتن به عکاسی با فرش درسدی. مامانم از صدی خوشش نمیاد همش میگه مادر بالا سرش نیست وله مامانش طلاق گرفته بود باباشم زنگ گرفته بود با بابا و زن باباش زندگی میکنه. تو مدرسه همه رجای مادرش حرفای بدی میزدند. همش ازش می چرا مامان طلاق گرفته الان کجاست؟ ولی من خوشم می ازش با معرفت بود هیچ وقتم چخان پخان یعنی علکی به آدم پوز نمیداد.